آیا از چیزی که انجیل درباره بخشش و راستی با دیگران را میگه تجرب می کنید؟ امروز خواهیم دید که عیسی در مورد روابطمون و اصلاح اونها چه تعلیمی به ما میده. دوستان خوبم، به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. ضمن بررسی کتاب مقدس به باب هیفته انجیل متا رسیدیم، حالا با هم به معلممون گوش میکنیم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 و هیچ چیز برای شما محال نخواهد بود لکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی رود. در باب هفتهم انجیل متا داستانی از معجزات در زندگی و خدمت عیسی هست که به ما پیش زمینه ای از تعالیم عیسی درباره ایمان میده. در این تعلیم ایمان شما یکی از خالص دعاهای کتاب مقدس را می بینید اگر این داستان رو با دیگر انجیل مقایسه کنید خواهید فهمید که وقتی این مرد که پسرش دیو زده است رو به عیسی میکنه و میگه بر ما رحم کن و اگر میتوانی کاری بکن عیسی میگه اگر میتوانم هیچ بحثی در این نیست که عیسی میتونه کاری بکنه شاید بشه گفت اگر ارادت این هست کاری بکن اما نباید گفت اگر میتوانی کاری بکن عیسی بار ایمان رو بر این پدر میذاره عیسی میگه مهم نیست که من چی کار میتونم بکنم مهم اینه که تو چقدر ایمان داری در انجیل دیگه وقتی پدر این رو میشنوه غرق در اشک میشه و میگه من ایمان دارم ولی ایمانم کم است آن را زیاد گردان همه ما نشانه‌هایی از ایمان داریم منظورم اینه که ما تا حدی باور میکنیم اما بعد به جایی میرسیم که ایمانمون تموم میشه و بی ایمانی شروع میشه هیچکس ایمان کامل نداره همه ما باید مثل این پدر دعا کنیم خدایا من ایمان دارم کمک کن بر بی ایمانی خودم قلبه کنم اینجا در این دعای سمیمانه درخواستی هست کمک کن سطح ایمانم رو افزایش بدم و سطح بی ایمانیم رو کاهش بدم. دعای سمیمانه این پدر و پاسخ ایسا به این دعای سمیمانه درس زیبایی در مورد ایمان هست. وقتی ایسا به طور خصوصی با شاگردانش ملاقات میکنه، اونها میپرسند چرا ما نتونستیم این روح رو اخراج کنیم؟ ایسا باز هم درسی در مورد ایمان میده و جواب میده چونکه ایمان شما کم بود. من فکر کنم وقتی داستانی مثل این رو بفهمیم، باید چنین سؤالی بکنیم. اصلا ایمان چی هست؟ واقعا از کجا بدونیم که سطح ایمان ما کجا تموم میشه و سطح تردید ما از کجا شروع میشه؟ به طور کاربردی دعای ما باید این باشه. خدایا ایمان من رو بده و بی‌ایمانی منو کاهش بده. آیه کوچیک زیبایی در متتاب باب 18 هست در آیه ده متتاب باب 18 ما میخونیم. هرگز این کوچکان را حقیر نشمارید. بدانید که آنان در عالم بالا فرشتگانی دارند که پیوسته در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر هستند با داشتن بنیادی اساسی برای رو کرده به جیل مخصوصا در انجیل متا، بسیاری از متون رو به سرعت مرور خواهیم کرد و فقط به چیزهایی اشاره خواهیم کرد که لازم اونها را ملاحظه کنید. چیزی که در این آیه کوچک می خواهیم ملاحظه کنید حقیقتی در مورد فرشتگان محافظ هست آیا به فرشتگان محافظ باور دارید؟ هرگز فراموش نمی‌کنم که با اتومبیلی کوچک تصادفی کرده بودم که اتومبیل تماما از بین رفته بود. من در گوشه شاهراهی شلوغ ایستاده بودم و شاید به مدت پنج دقیقه به این فکر می‌کردم که من چطور از اون ماشین جان سالم به در بردم بدون اینکه آسیبی ببینم. بعد از اینکه سعی کردم درک کنم که چطور توانستم بدون هیچ خراشی نجات پیدا کنم، بالاخره به این نتیجه رسیدم که تنها توضیحش می‌تونه متا ده باشه. باید فرشته محافظی بوده باشه که در لحظه تصادف مراقب من بوده. بسیاری از مردم تجربیاتی دارند که اونها رو متقاعد کرده فرشتگان محافظ وجود دارند. آیا شما هم به این باور میکن؟ من که یقین دارم. تصمیمش با شما هست که باور کنید یا نکنید. در باب هجده انجیل متا شما قسمت مهمی می رو میبینید که موضوعش انضباط کلیسا هست. عملا این متن بر اهمیت صداقت ایمانداران در روابطشان با دیگر ایمانداران تاکید میکنه. در موزه سر سرکوه عیسی گفت اگر با برادرتان در صلح نیستید تا زمانی که با او آشتی نکردید برای صحبت کردن با خدا به حضور او نیایید. اول برید با برادرتون آشتی کنید و بعد بیایید با خدا صحبت کنید. این جایی هست که عیسی روابط شما رو با برادران و خواهرانتون حتی مقدم بر روابطتون با خدا میدونه. اول برادرتون، بعد خدا این بسیار اهمیت داره که طبق تعالیم و ارزشهای عیسی ما با ایمانداران رابطه درستی داشته باشیم به عنوان یک شبان تجربه من اینه که سوء تفاهمات اغلب بین خواهران و برادران ایماندار توسعه پیدا میکنه. من به این نتیجه رسیدم که این سوء تفاهمات مثل باکتری هستند باکتری‌ها در محیط تاریک رشد می‌کنند اما در روشنایی نمیتونند به زندگی ادامه بدن در این متن به اعتقاد عیسی به صحبت بین شما و برادرتون که احساس میکنید نسبت به شما خطا کرده ارزش زیادی قائله اینجا عیسی فرمولی میده و یا فرمانی صادر میکنه که طبق اون با برادرتون رابطه درستی داشته باشید. در این فرمان عیسی به ما میگه که وقتی که ایمانداران دوچاره سوء تفاهم میشن بهترین دوستی که دارند نور هست چون اگر در سوء تفاهمات نور به بسیاری از مسائل مثل باکتری ها خواهند مرد. اونها نمیتونن در روشنایی زنده بمونن اما اگر شما اونقدر برادرتون رو دوست ندارید که با او روبرو بشید اون سوء تفاهمات میتونن زیادتر و زیادتر بشن تا جایی که شکافی غیر قابل عبور بین شما و برادرتون ایجاد بشه بنابراین این این رویه رو برقرار کرده اگر فکر میکنید برادرتون نسبت به شما خطا کرده نزدش برید زمانی که شما با او تنها باشید با او مواجه بشید چراغ رو روشن کنید اگر او به این واقعیت اقرار نکنه که مشکلی وجود داره یا مسائل بین شما و برادرتون هنوز اصلاح نشده بعد از اون کسی رو با خودتون ببرید. بالاخره اگر به جایی نرسیدید به تمام کلیسا بگی. هدف این هست که مشکلی که بین شما و برادرتون هست حل بشه. برخلاف تعالیم متی 18، عیسی درس بزرگی در اهمیت بخشیدن برادرتون هم میده. یادتونه در دعای شاگردان عیسی گفت اگر نبخشی بخشیده نخواهی شد ما همونطور که میبخشیم بخشیده میشیم بعد عیسی این تعلیم رو به دعای شاگردان افسود اما اگر شما مردم رو نبخشید پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید وقتی ما به اون آیه مشکل در پایان دعای شاگردان نگاه می کردیم گفتم که خدا ما رو فقط به این خاطر میبخشه که ما برادرمون رو میبخشیم و ما برادرمون رو میبخشیم چون خدا ما رو میبخشه اینجا مسئله هست که منظور ایسا رو وقتی این سخنان رو میگفت به تصویر میکشه. مردی مقدار زیادی بدهی داشت. به پول امروزی چندین میلیون دلار بود. در اون ایام اگر کسی بدهکار بود و نمیتونست پرداخت کنه، شخص بدهکار رو به زندان میانداختن. در زندان بدهکاران اون شخص نمیتونست هیچ درآمدی داشته باشه. بنابراین در اون زندان از بین میرفت. طلبکار میتونه زن و فرزندان او رو به بردگی و پول حاصل از اون رو بابت بدهی او برداره در این مسل این مرد در چنین مخمسه وقتی سر رسید بدهیش میرسه از بخت بد ورشکست میشه و گریه میکنه و از طلبکار میخواد که طلبش رو ببخشه طلبکار دلش به حال او میسوزه و میگه تمام بدهیت رو بخشیدم چند میلیون دلار بدهی بخشیده میشه در سر راه مردی رو میبینه که به او 20 دلار بدهکار و گلوی او رو میگیره و میگه پول منو تا سنت آخرش بپرداز وگرنه تو رو به زندان خواهم انداخت کسانی که شاهد هر دو ماجرا بودند نزد طلبکار اول میرند و جریان رو به او میگن. او مجبور میشه مرد ناسپاس رو به محکمه بکشه و به او بگه تو مثل اینکه متوجه نشدی من چندین میلیون دلار بدهی تو رو بخشیدم و تو 20 دلار بدهی او رو نمیبخشی عقیده من عوض شده باید به زندان بری و من زن و فرزندانت رو خواهم فروخت و هرچه که بتونم وصول خواهم کرد با گفتن این داستان عیسی به اونها گفت پدر آسمانی من هم همون کار را با شما خواهد کرد اگر هر کدام از شما از صمیم قلب خطای برادرش رو نبخشه پدر من همون رو نخواهد بخشید میبینید که در این ارزشها و تعالیم عیسی چقدر اهمیت داره که رابطه ما با برادرانمون درست باشه تنها راهی که میتونه رابطه بین ما و برادرانمون درست باشه اینه که یاد بگیریم ببخشیم شما کامل نیستید پس زمانهایی خواهد بود که شما مجبور خواهید بود این کلمات ضروری رو بگی من اشتباه کردم متاسفم ممکنه منو ببخشی یا تو اشتباه کردی من رنجیدم اما تو رو میبخشم. اگر رابطتون با برادرتون درست نباشه شما ملزم هستید این رابطه رو درست کنید اگر اون نسبت به شما گناه کرده شما مسئولیت دارید که او رو ببخشید زمانهایی خواهد بود که او مجبور بشه شما را ببخشه و زمانهایی هست که شما باید او رو ببخشی پتروس پیش عیسی آمده از او پرسید خداوندا اگر برادر من نسبت به من خطا بکند تا چند بار باید او رو ببخشم تا هفت بار عیسی در جواب گفت نمیگویم هفت بار بلکه هفتاد مرتبه هفت بار چون پادشاهی آسمان مانند پادشاهی است که تصمیم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد این آیه نشون میده که به نظر عیسی شما باید هر روز برادرانتون رو به دفعات بیشمار ببخشید. باب 18 انجیل متا پر از تعالیمی درباره روابط انسانی هست. وقتی این تعالیم عیسی رو بررسی می‌کنیم، ملاحظه می‌کنید که بسیاری از اینها فقط مثال‌ها و کاربردهای از تعالیم سرکوه کوه عیسی هستند. موعظه سر اساس تمام تعالیم عیسی هست. وقتی که انجیل متا رو بررسی می‌کنیم و به تعالیم و ارزش‌های عیسی نگاه می‌کنیم، متوجه میشیم که عیسی همیشه در حال تعلیم دادن هست. او رو میبینیم که در گفتگوها تعلیم میده، در مثلها و در صحبتهاش با مردم، وقتی مردم رو شفا میده و گاهی در گفتگوهای خصمانه با رهبران مذهبی هم تعلیم میده. در باب 19 متا مثالی از تعالیم عیسی هست که از گفتگوی خصمانه با رهبران مذهبی برداشت میشه. رهبران مذهبی میخواستند که عیسی رو بیعتبار کنند. اونها شنیده بودند که عیسی تعلیمی در مورد ازدواج و طلاق میده که با تعالیم موسا مقایرت داره. بنابراین برای اینکه او رو در نظر مردم بیاعتبار کنند، نظر او رو در مورد طلاق پرسیدن. آیا جایز است که مرد به هر علتی که بخواهد زن خود را طلاق دهد؟ اونها تعالیم موسا رو اینطور تعبیل می عیسی ایسا با دادن قاطعترین تعلیم در کتاب مقدس در مورد طلاق به اونها پاسخ داد. ایسا این رو از موسی نقل میکنه و تعالیم مسیحی و ابری رو در مورد ازدواج عنوان میکنه یادتون هست که در بررسی عهد قدیم وقتی کتاب پیدایش رو بررسی میکردیم دیدیم که خدا این قانون حیات رو که بهش ازدواج میگیم چطور ایجاد کرد خدا دو نفر رو گرفت و اونها رو شریک کرد تا والدین باشند بعد به عنوان والدین کسانی رو به دنیا بیارند که اونها هم بتونن شرک ها و یا والدینی باشند که کسان دیگری رو به دنیا بیارند و به همین ترتیب ادامه پیدا کنه خدا قصد داشت که زمین رو با چنین افراد لایقی پر کنه وقتی فریسیان از ایسا در مورد ازدواج پرسیدند ایسا در پاسخ گفت باید به پیدایش برگردید اگر می بفهمید ازدواج چگونه چیزی هست باید به زمان موسا برگردید و ازدواج رو انگونه که بود درد کنید به این ترتیب ایسا به ما نشون داد که چطور به کتاب پیدایش نگاه کنید؟ کتاب پیدایش کتابی در مورد آغاز هاست. خدا اون آغازها رو به ما نداده به این دلیل که احساس میکرده توضیحی به ما بده کاره. خدا آغازها رو به ما شرح داده چون میخواست همه چیز رو یکی پس از دیگری همان گونه که بودن به ما شرح بده تا بتونیم هر کدوم از اونها رو اونطور طور که باید باشن درک کنیم. این در مورد ازدواج در متا 19 هم صدق میکنه. ما باید ازدواج رو به همون روشی تفسیر کنیم که خدا در کتاب پیدایش تفسیر کرده. عیسی گفته که اگر به ابتدا برگردیم و ازدواج رو اونطور که بود ملاحظه کنیم میتونیم ازدواج رو اونطور که باید باشه درک کنیم ما میبینیم بینیم که ازدواج رابطه ای هست بین یک مرد و یک زن اولا ازدواج رابطه ای آینده نگر هست ازدواج رابطه ای آینده نگر هست به خاطر اینکه خدا معمار این رابطه هست این خدا بود که نقشه ازدواج رو ترک کرد به این دلیل که ما باید توقع داشته باشیم که ازدواج در کتاب مقدس اومده باشه درسانی ازدواج رابطه ای آینده نگر هست چون اگر ازدواج ازدواجی تحت نظر خدا باشه میتونید بگید خدا اون ازدواج رو ترتیب داده خدا مبتکر عشق هست چون خدا هوا رو نزد آدم آورد و او را به آدم معرفی کرد و اون دو رو کنار یکدیگر قرار داد در این صحنه شما تصویر زیبایی دارید که به طور سمبولیک نشون میده ازدواج در نظر خداوند چی هست. عیسی ازدواج را از نظر خدا اینطور تعریف میکنه که خدا اونها رو به هم پیوسته از این رو آنها دیگر دو تن نیستند بلکه یکی هستند پس آنچرا که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد این ازدواج هست بنا به گفته ی عیسی ازدواجی تحت نظر خدا هست که دو نفر بتونن بگن خدا ما رو یک جا قرار داده و او ترتیب ازدواج ما رو داده وقتی عیسی تعلیم داد که ازدواج باید رابطه ای ابدی و غیر قابل فسخ باشه یکی از شاگردان گفت اگر شوهر در مقابل زنش باید چنین وظیفه داشته باشه بهتر است که دیگر کسی ازدواج نکنه به نظر اون رسول اگر قرار بود چیزی به نام طلاق نباشه، اگر هیچ راه برگشتی نبود، اعتقاد او این بود که بهتر اصلا ازدواج نکنن تا اینکه وارد یک رابطه برگشت‌ناپذیر نشوند. عیسی نگفته که شما میتونید وکیل باهوشی بگیرید یا واعظی که به جای هر دو نفر صحبت کنه و شما همیشه بتونید از ازدواج خلاص بشید. و همیشه راهی برای جدایی وجود داره عیسی این رو نگفته. چیزی که ایسا گفته اینه همه نمیتونند این سخن رو قبول کنند مگر کسانی که استعداد اون را داشته باشند تعبیر من از این سخنان عیسی اینه که هیچ مرد یا زنی نمیتونه تمامی نقشه خدا رو در رابطه ای پایدار تجربه کنه مگر اینکه خدا به اون مرد یا زن کمک کنه به طور خلاصه ازدواج رابطه ای آینده نگر هست چون خدا اون ازدواج رو ترتیب داده و فقط او میتونه اون ازدواج رو حفظ کنه هیچ کس نمیتونه ازدواج رو اونطور که نقشه خدا هست تجربه کنه مگر اینکه خدا به او کمک کنه میخوام ازتون این سوال رو بپرسم آیا در رابطه ازدواجتون کشمکش دارید اگر ازدواج رو مشکل میبینید یادتون باشه که نقشه اون ازدواج در کتاب مقدس هست و نیروی محرکه برای پذیرش نقشه ازدواج عیسی مسیح روح القدس و خدای پدر هست. بنابه به گفته کتاب مقدس ما هرگز نمیتونیم بدون کمک خدا شرکا، والدین و یا شخص لایقی باشیم. از خدایی که خالق شما و ازدواج هست بخواهید که به شما نشون بده چطور میتونید ازدواج رو بر اساس نقشه او تجربه کنید و از او بخواهید که به شما نیرویی بده که نقشه او رو در ازدواجتون اجرا کنید. بعد شبانی خداشناس پیدا کنید که واقعا به خدا و به کلام خدا ایمان داره تا به شما در ازدواجتون کمک کنه. عیسی در متی 19 تعلیم میده که اگر ازدواج شما ازدواجی تحت نظر خدا باشه میتونید این سه چیز رو در مورد ازدواجتون بگید. خدا اون رو مقدر کرده، خدا ترتیب اون رو داده و فقط خدا میتونه اون رو حفظ کنه. عیسی تعلیم میده که ازدواج در نظر خدا رابطه ای آینده هست. در متا 19 در ادامه میگه. ازدواج رابطه‌ای هدفدار هست. شما هرگز نمیتونید ازدواج کتاب مقدسی رو درک کنید مگر اینکه اینگونه به ازدواج نگاه کنید وقتی خدا ازدواج رو مقرر می کرد، هدف مورد نظر خدا چی بود ؟ ما تقریبا به هر چیزی در زندگی اینطور نگاه میکنیم. چه چیزی برای من داره؟ وقتی مردی میخواد ازدواج کنه اغلب فکر میکنه نمیدونم این زن برای من چیکار خواهد کرد؟ وقتی مردی متقاعد میشه که اگر با این زن ازدواج کنه زندگی بهتر خواهد شد بعد از اون تصمیم به ازدواج میگیره به نوعی زنها هم همین کارو میکنن اونها به امنیت و چیزهایی که از همسرشون دریافت خواهند کرد فکر میکنن اساسا بیشتر مردم با چنین دیدگاه خودخواhane ازدواج میکنن عیسی گفت اگر واقعا میخواهید ازدواج رو درک کنید از این دیدگاه به ازدواج نگاه کنید چه چیزی در این ازدواج برای خدا هست مثال ایوب رو ملاحظه کنید در کتاب ایوب ایوب در تمامی تجربیات و رنجهای خودش شخصا اقدام می‌کرد. ایوب سؤال می‌کرد چرا باید انسان توقع داشته باشه از دست خدا نیکویی دریافت کنه. الیهوی جوان در زندگی ایوب وارد شد و گفت: ایوب، دست خودت رو در مرکز زندگیت قرار نده. به بالا نگاه کن و دست خدا رو در مرکز زندگی خودت قرار بده. نپرس که خدا چه چیزی در دست من قرار خواهد داد. بپرس که من چه چیزی در دست خدا قرار خواهم داد. اگر شما هم مثل ایوب به بالا نگاه کنید و زندگی خودتون را از دیدگاه خدا ببینید وقتی ازدواجتون رو ملاحظه کنید باید این سوالات رو بپرسید. چرا خدا ازدواج رو ترتیب داد؟ وقتی او ازدواج رو طرح ریزی می کرد، چه چیزی در فکر داشت. این موقع است که خواهید فهمید چرا ازدواج رابطه ای دائمی هست چیزی به نام حق فرزندان وجود داره در کنار بقیه اهداف ازدواج زمینه ای هست که خدا قصد داره، فرزندان در اون متولد بشن پرورش پیدا کنن و آماده بشن با زندگی در این دنیا مواجه بشن اگر ازدواجی محکم و پایدار باشه بچه هایی که در اون ازدواج متولد میشن زمینه ای پایدار و محکم برای پرورش و آماده شدن برای رویارویی با زندگی خواهند داشت اما اگر ازدواج دائمی نباشه اگر وفاداری واقعی بین زن و شوهر نباشه فرزندان چه فرصتی برای رشد و آماده شدن برای رویارویی با زندگی خواهند داشت اگر از دیدگاه فرزندان به ازدواج نگاه کنید خواهید فهمید که چرا عیسی تعلیم میده ازدواج ای دائمی هست این تنها باب ازدواج در کتاب مقدس نیست من معتقدم که کتاب مقدس طلاق رو در اول قرنتیان باب هفت تعلیم میده الان نمیخوام وارد جزئیاتش بشم اما وقتی به رسالات پولس برسیم خواهیم دید که آیات دیگری هم در خصوص ازدواج و طلاق وجود داره اینجا در این متن یک علت برای طلاق ذکر میکنه اون علت خیانت هست به نظر عیسی ازدواج قراردادی انحصاری بین دو نفر هست وقتی که انحصار ندیده گرفته میشه قرارداد از بین میره بعضی ها چیزی رو که عیسی گفته اینجوری تعبیر نمیکنن اما خیلی ها هم تعبیر میکنن وقتی قرنتیان رو مطالعه کنید معتقدم که پولس مبنای دیگری برای طلاق به ما خواهد داد من فکر نمیکنم که بتونید بگید کتاب مقدس تعلیمی درباره طلاق نداره اما تا بررسی کتاب اول قرنتیان صبر خواهیم کرد تا تعلیمی جامع از ازدواج و طلاق را داشته باشیم کتاب مقدس میگه که ما بدون کمک خدا نمیتونیم شرکای لایقی باشیم اگر خداوند خانه را بنا نکند زحمت بنایان بیفایده است هرگاه خداوند از شهر نگهبانی نکند مراقبت نگهبانان بیهوده است فایده ای نداره که از صبح زود تا شام برای به آوردن خوراک خود این همه زحمت بکشید زیرا خداوند هنگامی که محبوبان او در خواب هستند روزی اونها را آماده میکنه نگرانی در مورد خانواده ای که سعی می کنید اون رو پا بر جان نگه دارید بیهوده است فقط خدا میتونه خانه و خانواده ای رو بنا کنه در این متن می میگه که شما هرگز نمیتونید بدون کمک خدا والدین شایسته ای بشید مگر اینکه خدا به ازدواج کمک کنه وگرنه مردم در تمام طول عمر خود با یک نفر زندگی نخواهند کرد. شما برای اینکه شرکا و والدین لایقی باشید باید کمک خدا رو داشته باشید. پیام بزرگ کتاب مقدس مخصوصاً تعالیم ایسا در مورد تولد تازه به ما میگه که ما هرگز نمیتونیم بدون کمک خداوند اشخاص لایقی باشیم. آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. عیسی گفت بنابراین تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. ضمن ادامه بررسی انجیل متی به باب 19 میرسیم. اینجا داستان آشنایی رو میبینید که در حرس انجیل همسان به چشم میخوره. این داستان داستانی ای هست که به اون جوان می میگیم. این جوان ثروتمند تمامی شرایط یک زندگی خوب رو داره. او ثروتمنده پایبند اخلاقیاته و مذهبیه. او میاد و به پای ایسا میفته و میگه سرورم چی کار باید بکنم تا حیات ابدی پیدا کنم با قرار دادن این داستان در زمینه فرهنگ خودمون تصور کنید کسی مثل پسر یکی از بلند پایگان که لباسای بسیار گران پوشیده و در خیابون قدم میزنه و تمامی شواهد نشون میده که او واقعا شخص مهمیه فرض کنید که او داره با محافظینش راه میره و بعد تصور کنید که نجاری داره در خیابون راه میره و لباس کار معمولی نجاران رو پوشیده و کفشای کوهنهی به پا داره. پسر این شخص برجسته با های گران قیمتش می‌دوه و به پاهای نجار می‌افته و به او میگه سرورم چیکار باید بکنم تا حیات ابدی پیدا کنم آیا این صحنه باعث بند آمدن ترافیک نمیشه این چیزیه که در این داستان اتفاق میفته. عیسی فقط یک نجار با سر و وزی نامرتب بود او هیچ نشانی از تشخص نداشت بعد این مرد با تمام اعتبارش می‌دوه و به پاهای او می‌افته و میگه ای استاد چه کار نیکی باید بکنم تا بتوانم حیات جاودانی را به دست آورم. شاگردان در فاصله ای دور از این صحنه قرار داشتند شاید اونها صحنه را دیدند اما گفتگوها را نشنیدند وقتی اونها این را دیدند تحت تاثیر قرار گرفتند احتمالا فکر کردند یه رسول دیگه هم به ما اضافه شد به اون مرد جوان نگاه کن او ثروتمنده نجیب زاده است آدم خوش اخلاق و مذهبی هم هست عجب کاندیدایی اما بعد از مکالمه کوتاهی با عیسی اونها دیدند که این مرد با حالتی بسیار غمگین از عیسی دور شد عیسی به طرف شاگردان میاد سرش رو تکون میده و میگه چه دشوار است ورود ثروتمندان به پادشاهی خدا رد شدن شطر از سوراخ سوزن آسانتر است تا وارد شدن ثروتمندی به پادشاهی خدا رسولان ناامید شدند و گفتند پس چه کسی میتواند نجات یابد عیسی پاسخ داد آنچه برای آدمیان غیر ممکن است برای خدا امکان دارد در اون گفتگو چه اتفاقی افتاد این مرد جوان ثروتمند از عیسی پرسید چی کار باید بکنم تا به حیات ابدی دست پیدا کنم عیسی گفت و فرامین رو میدونی عیسی فرامین لوح دوم رو که در مورد روابط ما با اشخاص دیگر هست برای او برشمرد مرد جوان گفت من از جوانی تمامی اینها رو به جا آوردم عیسی به او گفت هنوز یک چیز کم داری لوقا اینجا جزیات جالبی رو اضافه کرده او به ما میگه عیسی با دقت به او نگاه کرد و گفت آنچه چه داری بفروش و میان فقرا تقسیم کن که در عالم بالا جی خواهی داشت و بعد بیا از من پیروی کن چرا عیسی به این مرد جوان میگه این پنج کار رو بکن برو، بفروش، بده، بیا و پیروی کن آیا منظور عیسی این بود که تنها راه رسیدن به حیات ابدی اینه که باید بری بفروشی، بدی و بیایی و پیروی کنی؟ آیا ایسا میگه که باید نظر کنی که فقیر بشی و تمام ثروتت را از دست بدی؟ اگر تمامی گفتگوهای عیسی رو مقایسه کنید، فکر می کنم به این نتیجه خواهید رسید که چیزی که عیسی به این مرد جوان میگفت انجام بده این بود که میگفت توبه کن. توبه برای هر کسی معانی مختلفی داره. برای زن سامری که در باب چهارم انجیل یوحنا شهر داده شده و پنج بار ازدواج کرده بود و حالا با کسی زندگی می کرد که شوهرش نبود، توبه یعنی او باید زندگی خانوادگیش رو اصلاح کنه. به این دلیل وقتی زن گفت که آب زنده رو میخواد عیسی صحبت رو به شوهر او کشاند. اما در مورد این مرد جوان توبه مربوط به پول هست چون پول وسوسه او هست پول خدای او بود فرمان اول اینه که خدا رو در اولویت قرار بدید اما آشکارا معلوم بود که اولین اولویت این مرد جوان پول بود برای اثبات این عیسی میخواست که بر روی ثروت این مرد تمرکز کنه که معنی توبه این مرد جوان بود عیسی او را به چالش واداشت از تمامی پولت خلاص شد مرد جوان نمیتونه این کار رو بکنه. در گفتگویی که عیسی با این رئیس ثروتمند جوان داشت، مرد جوان بر چیزی تمرکز داره که میتونیم بهش بهای شاگردی بگیم. آیا پیروی کردن از عیسی مسیح هیچ بهایی نداره؟ ها و مفاهیم الهیاتی این گفتگوها چی هست؟ من نمیخوام بگم که برای پذیرفتن کاربرد این گفتگو، عیسی تعلیم میده که شما نمیتونید حیات ابدی داشته باشید، مگر اینکه تمام ثروتتون را از دست بدید. و یا اون پنج کار رو انجام بدید اما فکر می کنم که گفتگوهایی مثل این چنین تعلیمی میده شما نمیتونید بدون توبه حیات ابدی داشته باشید فرقی نمیکنه توبه برای شما چه مفهومی داشته باشه توبه یعنی دوباره فکر کردن توبه یعنی تغییر افکار تغییر اراده تغییر قلب و بالاخره تغییر مسیر توبه یعنی برگشتن و به مسیر دیگر رفتن دیتریش بان این رو فیض ارزان توصیف کرده دیتریش بانهوفر یک خادم وابسته به کلیسای لوتران در آلمان نازی بود در خفقان هیتلری بانهوفر جرأت کرد که بهای شاگردی رو معذه کنه در ابتدای جنگ بانهوفر اطاعت مدنی رو تعلیم میداد. اما در آخر جنگ او به خاطر سعی کردن در ترور هیتلر محکوم به مرگ شد در نامهاش که از زندان به مادرش نوشته می بینید که او را از رو مدنی نوع اطاعتی مدنی تغییر داده. او کتابی نوشت تحت عنوان بهای شاگردی که در اون عبارت فیض ارزان رو به کار برد. ما با فیض نجات یافتیم. اما فیض ارزان نیست. ما نجات پیدا نکردیم به خاطر اینکه ثروتمون رو رها کردیم. ما نجات پیدا نکردیم به خاطر اینکه اون پنج کار رو انجام دادیم. اما اگر نجات یافتیم، کارهای زیادی خواهیم کرد. این چیزها رو باید ثمرات توبه گفت. به همون چیزی که یحیای تعمید دهنده مردم رو دعوت میکرد و من معتقدم که عیسی هم دعوت به توبه میکرد. مردم تا ثمرات توبهشون رو نشون نمیدادن یهیا یه اونها رو تعمید نمیداد. عیسی هرگز به کسی وعده نجات بدون توبه رو نمیده. هم یحیای تعمید دهنده و هم عیسی به نشانه توبه در زندگی مردم نگاه میکردن. بعضی ها معتقدند که این مرد بود نویسنده ثروتمند دومین انجیل وگرنه مرقس از کجا میدونست که عیسی نگاهی معنیدار به اون مرد کرد و او رو دوست داشت اونها فرض رو بر این میذارند که مرد جوان ثروتمند بعدها برگشت و تصمیم گرفت توبه کنه گفتگوی عیسی با این مرد جوان ثروتمند به این سوال اشاره نمی کنه که چیکار باید بکنم تا نجات یابم اما این گفتگو به اون سوال جواب میده ثمرات و یا نشانه های توبه چی هستند یک بار دیگه میخوام توجه داشته باشید که عیسی همیشه در حال تعلیم دادن بود از روح القدس بخواهید که تعالیم ایسا را در این گفتگو با مرد جوان ثروتمند براتون باز کنه و از اون اطاعت کنید اندوهگی نشید و اونجا رو ترک نکنید اطاعت کنید و لذت ببرید عزیزان آیا توبه کرده اید؟ آیا زمانی در زندگی شما بوده که افکار، قلب و مسیرتون رو در زندگی عوض کردیم؟ اگر اینطوره خدا رو شکر میکنیم که شما دانشجوی وفاداری در این کلاسها با ما هستید. با این حال، اگر توبه نکردین، امروز خدا از شما میخواد که برگردین و اون رو پیروی کنین. از شما دعوت میکنیم که امروز این کار رو بکنین. بعد تصمیمتون رو با معلم یا شبانتون در میون بذارید. عزیزان، دعای ما اینه که این کلاسها به شما کمک کنه و شما رو در آگاهی و ایمانتون، رشد بده. دامی کنیم که تا برنامه بعدی فیض اون و روح آرامش اون با شما باشه.